از گروه جوان و فرهنگ به نام خالق شب و ستاره سلام پسر با شتاب به طرف صدا دوید و دو مرد تنومند رو دید که پیرزنی رو روی زمین میکشیدند و میبردند پیرزن به محض دیدن پسر فریاد زد ای جوون مهربان منو نجات بده این دو پس فترت میخوان منو بدون هیچ دلیلی توی رود خونه غرق اون دو مرد با شنیدن این حرف با عصبانیت گفتند بدون دلیل واقعا چه کسی کاسی های من و همسر کرنته رو جادو کرده ها؟ اون چشنه دید بخشی از افسانه پسر پیرمرد بود از مردمان سرزمین لهستان بر گرفت کتاب افسانه های مردم لهستان نوشته السی بایرد ترجمه فاطمه شاه حسینی که ای علاقمند به شنیدن این افسانه زیبای لحستانی هستین کنار رادیو باشید روزی روزگاری در هاشیه جنگلی دور افتاده در سرزمین لهستان، فیر مردی زندگی میکرد کردی یه پسر داشت مادر پسرک وقتی که اون نوزاد بود از دنیا رفته بود و مرد برای نگهداری پسرش مجبور شد ازدواج مجدد کنه مدتها گذشت و پسر روز به روز بزرگ و بزرگتر می شد و مرد سخت به اون وابسته بود به طوری که اجازه نمیداد پسر لحظه ای از اون دور بشه همسر پیرمرد از این موضوع ناراحت بود و نسبت به پسر احساس کینه و حسادت داشت اما برای جلب همسرش وانمود میکرد که به پسرخوندش علاقه داره و مراقب اونه زن در عمق وجودش منتظر فرصتی بود تا پسر رو از خونه بیرون کنه و بالاخرههم اینقدر گفت و گفت تا اینکه پیرمرد راضی شد پسرش رو از خونه بیرون بفرسته بنابراین یه روز صبح پیرمرد پسرش رو از خواب بیدار کرده گفت پسر ازیزم وقتی اون رسیده که به فکر در درآوردنی یه لقمه نون باشی تو دیگه بزرگ شدی و باید روی پای خودت بایستی پیرمرد اینو گفت و بعد یه ویالون و سبدی پر از غذا به پسر داد و اونو به جنگل برد. توی راه به پسر خوندن و نواختن آهنگی رو هم یاد داد. اونها به راهی رسیدند که به بیرون از جنگل منتهی شد. پیرمرد از پسرش خواست که اونجا منتظرش بمونه و خودش برای کندن شاخهی به بیش رفت. اما به جای که پیش پسرش برگرده از همونجا به خونه برگشت پسر مدتی منتظر پدرش موند و وقتی خبری از اومدن اون نشد از خستگی به خواب پسر وقتی از خواب بیدار شد خوشید غروب کرده بود یاد پدرش افتاد و با صدای بلند اونو صدا زد اما هیچ جوابی نشنید پسر از ناراحتی شروع کرد به گریه کردن اما باز هم از پدرش خبری نشد که نشد پسر که گرسنه شده بود مقداری نون و یه بطری نوشیدنی از داخل سبد در و با اشتهای زیاد خورد و نوشید بعد هم ویالونش رو برداشت و شروع کرد به نواختن آهنگ و خوندن شعری قدیمی هی hey, شما شوالیه ها! در برنده کوهستانها کوهستان ها چه می پسر می خوند و به جلو میرفت، رفت و رفت تا به جاده درازی رسید هوا هنوز تاریک تاریک نشده بود لحظه ای استاد نمی به کدوم طرف بره چپ یا راست یا مستقیم بر طرف که نگاه میکرد براش فریبنده بود لحظه ای با تردید به اطراف نگاه کرد در این موقع روی زمین انکبوت خیلی بزرگی رو دید که داشت مورچهای ای رو میکشد اندازه مرچم عجیب و غیرادی بود مورچه به زبون اومد و گفت کمک کمک کمک این مرد جوون مهربون کمکم کن جبران میکنم خواهش میکنم کمکم کن پسر که دلش به حال مورچه سوخته بود فورا انکبوت رو کشت و مورچه رو نجات داد مورچه هم به طرف جنگل رفت پسر فریاد زد آهای مورچه لطفا به من میگی از کدوم طرف برم تا به دنیای آدما برسم مورچه ایستاد مکسی کرد و گفت مستقیم به سمت خورشید برو به شهری میرسی که خوشبختی در انتظارته مستقیم مورچه اینو گفت و لحظهی بعد از نظر پنهون شد پسر به راهش ادامه داد حالا دیگه ماه و ستاره ها آسمون رو کاملا نورانی کرده بودن پسر در حین راه رفتن گاهی ویالان میزد و شعر می خوند. اینجوری هم خستگی در می‌کرد و هم احساس تنهایی و ترس بهش دست نمی‌داد. پسر رفت و رفت تا سرانجام به جنگل رسید جنگل رو که پشت سر گذاشت به دشت پهناوری رسید در میون دشت رودخونه بزرگی جاری بود پسر ایستاد و با دقت به دور دست ها نگاه کرد اون کوهها و در رو دید که فاصله زیادی با اونها داشته در قسمت کم عمق رودخونه انبوهی نیرویده بود و درست همونجا بود که پسر صدای شرپ شرپی شنید فوراً به طرف صدا دویی تا ببینه این صدای چیه جلوتر که رفت ماهی بزرگی رو دید که توی تور ماهیگیری گیر کرده بود ماهی تقلا می کرد و خودش رو از میون تور ماهیگیری خارش کنه ولی ای نداشت بالاهای ماهی تلایی و فرساش ای بود اما صورتش مثل یه آدم بود ماهی با دیدن پسر فریاد زد «ای مرد جوود مهربون منو نجات بده من یه روزی کمکت میکنم خون میدم کمکت رو جبران کنم حالا بیا و منو از این تور رها کن پسر درشت به حال ماهی گرفتار در تور ماهیگیری گیری سوخت فورا داخل آب شد و تور رو باز کرد ماهی روی امواج درخشان پرید و به آرومی همراه جریان آب شنا کرد و در عرض یه چشم هم زدن ناپدید شد پسر مسیر رودخونه رو دنبال کرد رفت و رفت اما هیچ کجا خبری از آدمی نبود که نبود. در این موقع صدای جیغ و فریاد وحشتناکی به گوش پسر رسید صدایی که آمیخته به درد و ناله بود. پسر با شتاب به طرف صدا دوید و دو مرد تنومند رو دید که پیرزنی رو روی زمین میکشیدند و میبردند. پیرزن به محض دیدن پسر فریاد زد ای جوون مهربون منو نجات بده این دا پس بده میخوان منو بدون هیچ دلیلی توی رودخونه قر کنن نجاتم بده اون دو مرد با شنیدن این حرف پیرزن با عصبانیت گفتن بدون دلیل واقعا چه کسی کاسیایی منو همسر کرنت رو جادو کرده ها پیرزن سوگند یاد کرد که بیگناه اما دو مرد تنومند به حرف اون توجه نکردند و اونو همچنان روی زمین میکشیدند پسر چوب بزرگی برداشت و به جون مردها افتاد مردها که دیدن توان مقابل با پسر رو ندارن مجبور شدن پیرزن و رها کنن و از اونجا دور بشن پیرزن گفت ای جبون به خاطر کمکی که به من کردی خدا به تو پاداش ای میده هر وقت با من کاری داشتی کافیه منو صدا بزنی و بخونی آرزو میکنم که بیایی ای زن عجیب اگر هنوز تا به امروز زنده ای. اگر اینو بخونی اگر زنده بودم فورا نزد تو میام اما اگه فوری نزد تو نیومدم بدون که من مردم پیرزن اینو گفت و مثل برق از اونجا دور شد پسر رفت و باز هم رفت و رفت اینکه چندین کیلومتر از این سرزمین پردرخت خالی از سکنه رو زیر پا گذاشت دیگه ستاره ها داشتن ناپدید می و آسمون مثل یاقوت می رخشید. در همین وقت پسر به مرد جوون زیبایی برخورد کرد که به پشت روی زمین افتاده بود پسر با تعجب بالای سر اون جوون رفت و دید که از سرش خون زیادی فوران میکنه انگار زخم امیقی خورده بود مرد جوون حتما مرده بود چون نفس نمیکشید پسر به اون خیره شد و از خودش پرسید خدای من این مرد جوون کیه؟ چه کسی اونو به این روز انداخته پسر سخت توی فکر بود که صدای سم اسبانی رو شنید در یک لحظه چهار سوار از راه رسیدن اونا دنبال دوست خودشون میگشتن و وقتی اونا روی زمین افتاده دیدن به پسر نگاهی انداختند و با خشم گفتند تو چطور جرأت کردی دوست ما رو بکشی ها؟ پسر که انتظار شنیدن این حرف رو نداشت به تندی گفت اشتباه میکنید من من دوست شما رو نکشتم وقتی من رسیدم اما اونا و حرف های پسر توجهی نکردن و پسر رو به جرم قتل دوستشون دستگیر کردن و نزد پادشاه بردن پسر هر چی قسم یاد کرد که بیگناهه فایده ای نداشت که نداشت پادشاه همون لحظه اول پسر رو به مرگ محکوم کرد چرا که به جوونی که کشه شده بود سخت علاقمند من بود پسر دوباره شروع کرد به سوگند یاد کردن من که بیگناهه پادشا که مرد عادلی بود و نمیخواست بیگناهی رو مجازات کنه دستور داد پسر رو زندانی کنن و در واقع اونو امتحان کنن به مقدار مساوی کنجت رو با ماسه قاطی کردن و مقابل اون گذاشتن و گفتن باید دونه‌های کنجد رو از ماسه جدا کنه و اگه تا فردا صبح این کار رو انجام نده بیگناه نیست و باید تقاص پس بده. پسر بی‌نوا توی زندون نشسته بود و با نومیدی به کاری که باید انجام می‌داد نگاه می‌کرد که این مرتبه یاد مورچه افتاد که زندگیش رو نجات داده بود. با خوشحالی فریاد زد: آهای مرچه یه سهرامیس بیا اینجا. همونطوری که من به تو کمک کردم تو هم به من کمک کن در این موقع صدای از گوشه زندون جواب داد من سر قولم هستم نگران نباش پسر به, به اطراف نگاه کرد دید موچه اونجا هست و از میون شکاف دیوار موچه های زیادی بدون بالش در حرکتند. موشه ها در عرض کمتر از یک ساعت دونه کنجد رو از ماسه ها جدا کردند و سریع از اونجا دور شدن پسر که از خوشحالی سر از پا نمیشن فریاد زد متشکرم! متشکرم! صبح روز بعد وقتی زندانبانها به سراغ پسر اومدن از اونچه که دیدن مثل سنگ سر جاشون میخکوب شدن و بعد فورا دویدن تا به پادشاه این کار بزرگ و خارولاده رو خبر بدن پادشاه بعد از شنیدن این خبر دستور داد تا پسر رو آزاد کنن و برای جبران اشتباهش دستور داد کاری در میون ملازمانش به پسر بدن پسر بلا فاصله مشغول به کار شد و چون پسر زرنگو با استعدادی بود خیلی زود تمام فوت فن کارش رو یاد گرفت و به زودی استعداد و هوش و محبت و اخلاق نیکش بین همه از جمله دختر زیبای پادشاه زبان زد شد بله پسر و دختر پادشاه به هم دل بستند اما هیچ کدوم جرعت نداشتن عشق خودشون رو آشکار کنن. میترسیدن پادشاه با ازدواج اونها مخالفت کنه. خلاص زمان میگذشت و اونا امیدی به آینده نداشتند تا اینکه روزی پادشاه همراه ملازمانش از شکار برمیگشت که اسبش نزدیک که پل روی دو پا بلند شد. پادشاه که سوارکار ماهری بود خودش رو روی اسب میگردشت اما تاجش داخل رودخونه افتاد پادشاه فریاد زد تاج تاج تاجم از دست رفت تاجم اون به شدت و نگران شد نه به خاطر اینکه اون تاج خیلی گرون قیمتی بود نه نه نه به خاطر اینکه تا وقتی تاج در اختیار پادشاه بود کشور رونق داشت و مردم در آسایش بودن و هیچ وقت تقلیق گرسنگی تا اون و جنگ رو نچشیده بودن اما حالا که تاج از دست رفته بیشک مردم با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد و علت نگرانی و ناراحتی پادشاه هم این موضوع بود پادشاه بعد از این ماجرا فرمان داد و اعلام کرد هر کسی به قعر رودخونه بره و تاج رو بیرون بیاره هر آرزویی داشته باشه برآورده میشه حتی اگه با ارزشمندترین ترین چیزی باشه که متعلق به اونه خیلی از جوانه شجاع برون شدن تا این کار رو انجام بدن بعضی از اونا داخل رودخونه شیجه رفتن و دیگه هیچ وقت بالا نیمدن بعضی هم رفتن ولی دستخاری برگشتن پسر کنار رودخونه رفت و همچنان در فکر شاهزاده خانم محبوبش بود آهی کشید و با خودش گفت آه کاش کاش میتونستم اون تاج رو پیدا کنم اون وقت میتونستم به تنها آرزون برسم من بدون شاهزاده خانم نمیتونم زندگی کنم پسر همینجور با خودش حرف میزد که صدای شلپ شلب پیرو نزدیک خودش شنیم با نومیدی به طرف صدا برگشت فکر میکنین چی دید بله خودشم نمیتونست باور کنه همون ماهی عجیبی که بالاهای طلایی و فلسهای نقره‌ای داشت و پسر اونو از بند تور ماهی رها کرده بود به طرفش میمد در حالی که تاج پادشاه رو توی دهنش گرفته بود ماهی تاج رو جلوی پای پسر انداخت و خیلی سریع زیر آب رفت و ناپدید شد پسر خوشحال و هیجان زده تاج پادشاه رو برداشت و به طرف قصر پادشاه برافتاد پادشاه که از رشادت و شجاعت پسر در تعجب بود با خوشحالی اونو رو در آغوش کشید و ازش پرسید خب پسرم برای پاداش این کار چه آرزویی داری پسر با شرمندگی گفت قربان قربان من من پادشاه و گفت بگو پسرم بگو من هر آرزویی داشته باشی براورده میکنم بگو پسر نفس عمیقی کشید و به تندی گفت قربان اجازه بدید من با دخترتون ازدواج کنم ما همدیگر خیلی دوست داریم پادشاه چند دقیقهای به فکر فرو رفت و بعد خانم رو احضار کرد و از اون پرسید دخترم آیا تو تمایل داری با این پسر ازدواج کنی؟ دختر سکوت کرد و چهرش از شرم سرخ شد. پادشاه که متوجه علاقه دخترش به پسر شد دستور داد تبل و نواوی خوش و بخش در تمام سرزمین لهستان نواخته بشه و همون روز دخترش رو به عقد پسر در آورد و دعای خیرشون رو بر سر اونها کرد. افزونی مهم است مون نشده مردم از اینکه تاج خوشبختی اونها پیدا شده بود خیلی خوشحال بودند. فردای اون روز یه دفعه شاهزاده خانم بیمار شد و طبی شدید رعش بر جانش انداخت چند دقیقه بعد هم از حال رفت و توی رخت خواب افتاد حکیمان زیادی بر بالین شاهزاده خانم حاضر شدند، اما هیچ کدوم نتونستن اونو مالجه کنن غم و اندوه قصر رو دربر گرفت پسر نومی و گریان در کنار تخت شاهزاد خانم نشسته بود که یه دفعه به یاد پیرزنی افتاد که جونش رو نجات داده بود با خوشحالی از جا بلند شد و فریاد زد آرزو می میکنم که بیایی ای زن عجیب اگر هنوز تا به امروز زنده ای و هنوز حرفش تموم نشده بود که باد تندی وزیدن گرفت و پنجری اتاق باز شد و پیرزن سوار بر جارویی دست بلند وارد شد و از پسر پرسید ای مرد جوون چه کاری میتونم برای تو انجام بدم؟ پسر تمام ماجرا رو برای پیرزن بازگو کرد پیرزن گفت تو تلش شده اونم از طرف جادوگری که قصد داشته با اون استواج کنه و بعد اضافه کرد این جادوگر توی باغش گیاه جادویی داره که زیر دیوار رویده و هیچ وقت روشنای روز رو ندیده اگه برگ اون گیاه رو روی چشای شاهزاده خانم بذاری فوراً چشاش رو باز میکنه و حالش خوب خوب میشه پسر پرسید خب این باغ کجاست چجوری میشه اونجا رفت پیرزن گفت نگران نباش من الان در یه چشمه زدم میرم و اون گیاه رو برای تو میارم بیرزن در عرض چند دقیقه گیاه رو آورد و پسر برگ اون روی چشای شاهزاده خانم گذاشت چشمه شاهزاده خانم به محض تماس با گیاه باز شد و شاهزاده خانم با تچوب به اطرافش نگاه کرد آه چشور و شعفی توی قصر و سرزمین لهستان لحستان برپا شد. شاهزاد خانم به همراه همسرش و هاش خوشحال به طرف کلیسا رفتند تا از لطف و خداوند نسبت به خودشون تشکر کنند اونها ساریان سال با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. افسانه پسر پیرمرد رو امشب براتون نخ کردم از مردمان سرزمین لهستان برگرفته از کتاب افثانهای مردم لهستان، گردآوری السی بایرد و ترجمه فاطمه شاه حسینی میگن افثانها و قصه ها خوابهای رنگین آدمیانن مکسیم گورکی نویسنده خوشخلم روس درباره قصه و افسانه میگه اعتراف میکنم که در جریان تکامل ذهنی من افسانهها ها مثبت فراوانی داشتند به خصوص هنگامی که آنها را از زبان مادر بزرگم یا قصه گویان ده کده میشنیدم هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار الهام اشکان اجرا مهران دوستی صدا بردار فاطمه گنجلی پیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرود